Jag قدر مادرت را بدان قبل ازی که مادرت به سرای آخرت بشتاوت قدرش را بدان قبل ازی که به سر قبر مادرت بری و فریاد بکشی مادر برخیز به خانه ایمان برو زنده باشو خانه ایمان چراغان بکن برخیز که دست تو رو ببوسم قبل ازی که مادر از دست می دی قدر مادر خود رو بدان قبل ازی پدر از دست می دی قدر پدر خود رو بدان وقت نگاه می کنی پشت تو پوره احسات ایتمینان و آرامش داری اون از برکت دست پر مهر و محبت پدره اگر پدر رفت شانه تو خالی می شود پشت تو خالی می شود قبل ازی که پدر مهربان خود را از دست بدی قدرش را بدان پدران و خواهران بزرگوار قدر فرزندان خود را بدانید قبل ازی که جگرگوشی خود را از دست بدهی قدرش را بدان قدر دوست خود را بدان قبل از که دوستت بره به سران آخرت او رو عزیز خود بدان خیلی ها دوست ها از همدیگر دیگر آزارده می باشه فردای پس فردای با او تماس میگیرم پس با او آشتی می کنم خبر مرگش به تو میرسد رسد تلانی مرد به همین زودی به همین سادگی کاش قدرش رو می دانستم کاش آزردنه می رفت قدر همسایت را بدان قدر خیشت را بدان قدر هم دیگر را همه ما بداری قبل از اینکه موت با سراغ ما بیاید قدر آلم خود را بدان قبل از اینکه به سرای آخرت بشتابه بد فضای مجازید می بیریم که پر شد فلان آلم رفت دل ما زخت قدرش را کاش می دانستیم فلان و فلان قدر علما را بدانید قدر موسفیدان را بدانید قدر همه بندگان خدا را بدانید بیم قدر هم دیگر را بدانیم دنیا خیلی بیارزشه خیلی بیوافاست اصلا نمیدانه انسان دوست کی وفاد میکند اسرائیل مگر به منو تو تماث میگیره برو کنار دوستش دوستت بنشین که فردا یا پس فردا نفتش میرسد دوستان ما رو از دست ندهیم اینا رو به آغوش بگیریم مهر و محبت با همدیگر داشته باشیم صفا و سمیمیت داشته باشیم همدیگر بادیر و جان دوست داشته باشیم نگاه خوبی داشته باشیم از اشتباه خورد و که داریم در بگذاریم Äi, må då det du söns, man man kan inte hitta på ett utgångspunkt. Äi, må då det du söns, jag kan inte hitta på ett utgångspunkt. Äi, må då det du söns, man man kan inte hitta på ett utgångspunkt. Äi, må då det koyat babbar ya ya tino as, as a ima, a ima da